به نام خدا کتاب افسانه های آفریقایی بچه های کوزی نویسنده کتلین آرنوت ترجمه رزوان دسفودی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار های افسان. داستانهای ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سوهیلا آبدی ستان حسادت حالا با سالها قبل مردی زندگی میکرد که دوتا پسر داشت هرچند که اون پسرا رو خیلی دوست داشت اما همیشه در آرزوی داشتن یه دختر بود عاقبت بعد از مدتها خداوند به اون دختری داد مرد هر کاری رو که میتونست برای فرزند کوچیکش بکنه انجام میداد اگه به بازار می رفت، حتما برای دخترش خوراکی های خوشمزه، گردنبند، مروارید لباس یا روبانی برای موهای سرش می خرید. اما پسرا اگه خیلی بختیارشون بود، پدر روز اید براشون یه دست لباس می خرید. اون حتی نمی دخترش مثل بقیه بچه ها برای اووردن چوب یا آب به جنگل بره اما برادرها باید سخت کار می کردن. سالها گذشت. دختر بزرگ و زیبا شد. بین بچه ها اون صاحب شفافترین چشما و نرمترین پوستا بود. چون مثل بچه های دیگه مجبور نبود تو خونه یا مزرعه کار کنه. هیچ اثری از زخم و خراشیدگی روی دست و پاهاش نبود. به خاطر رفتار پدر دو برادر نسبت به خواهرشون حسادت میکردن. پسر بزرگتر که اسمش حالا با او بود، شبای زیادی رو بیدار میمون تا راه حلی برای خلاص شدن از دست خواهرش پیدا کنه. یه روز وقتی دختر ده ساله شده بود، پدر بازم به پسر گفت که به جنگل برن و چوب جمع کنه. حالا با او رو به خواهرش که زیر سایه سقف هسیری روی زیراندازی از پوست بز نشسته بود گفت خواهر امروز تو هم با ما به جنگل بیا و کمک کن. من و برادرمون بالای درخت میریم و شاخه های و میشکنیم. اگه تو پایین درخت باشی و تکه های چوب و جمع کنی و به صورت پشتهی دراری، کار ما کمی سبکتر میشه. بعد لبخندی زد و ادامه داد، نه ترس ما مواظب به تو هستیم. مطمئن باش تا وقتی با ما هستی، کسی آزاری به تو نمیرسونه. دختر از اینکه برادرش می‌خواستن همراه اونا بره زوغ زده شده بود. پس بلند شد و همراه اونا به طرف جنگل انبوه و پر از سایه بره افتاد. اول حالا با او و شادوسا از درخت بالا رفتن و شاخه‌های و شکستن. دخترم پایین درخت تون تون شاخه‌ها رو جمع می‌کرد و با پیچک‌ها اونا رو دسته می‌کرد و می‌بست. حالا با او به برادر کوچیک‌تر گفت این دست چوب چوبو به حاشیه جنگل ببر. من و خواهرم دسته دیگر رو آماده می‌کنیم. اون وقت برگرد و دسته دیگر رو ببر. برادر کوچیک‌تر بلافاصله حرف اونو گوش کرد و رفت. وقتی صدای قدمای اون دیگه شنیده نشد، حالا با او به طرف خواهرش حمله برد و اونو روی شونش گذاشت. خواهر فریاد میزد تا خودشو خلاص کنه اما برادر اعتنایی به حرفش نمی‌کرد. پسر از یه درخت بلند که از قبل برای این کار در نظر گرفته بود بالا رفت. دختر از ترس جونش و اینکه مبادا از درخت پایین بیفته بی حرکت موند. اون از اون میترسید که برادرشونو از بالای درخت به پایین بندازه. اما حالا با او بالاتر و بالاتر رفت تا جایی که به شاخه‌ای گل رسید. شاخه‌ای که به خوبی لابلای برگا پوشیده شده بود. بعد از زیر لباسش یک گلوله یه از پیچک بیرون آورد و خواهرش محکم به شاخه‌ای درخت بست طوری که اون نمیتونست حرکتی بکنه دختر که فهمید چه سرنوشتی در انتظارش ترسید و از حال رفت برادر با دیدن این حالت خواهر با خوشحالی از درخت پایین اومد و با عجله تو جاده شروع به دویدن کرد تا به موقع خودشو به برادرش که در راه بازگشت بوند، برسونه. حالا با او به سوی برادرش دوید و گفت خواهرمون از دستمون رفت. بیا با هم به دنبالش بگردیم. اگه اونو پیدا نکنیم، پدر به شدت خشمگین میشه. بعد به یه طرف اشاره کرد و گفت خواهرمون از این طرف رفت. دو برادر ساعتها گشتن، اما خواهر رو پیدا نکردند. عاقبت بعد تصمیم گرفتن به خونه برن و این خبر بد رو به پدرشون بدن. پدر بعد از شنیدن این خبر اونقدر سبانی شد که اونا رو وادار کرد دوباره به جنگل برن و به دنبال خواهرشون بگردن. حتی فردا و فردا اون روزم اونا رو مجبور کرد که همه جا رو بگردن. کم کم خشم پدر جاشو به اندوه و قصه داد و مرد قبول کرد که دخترشو از دست داده. اما دختر در چه حالی بود بالای اون درخت به اون چی میگذشت؟ مدتی که گذشت کمی حالش بهتر شد و به هوش اومد بعد با صدای بلند شروع به فریاد زدن کرد تا شاید کسی صداشو بشنوه و اونو آزاد کنه اما هیچکس صدای اونو نشنید اونقدر فریاد زد تا گلوش از گرما و تشنگی خشک شد و به سوزش افتاد وقتی شب شد صدای صحبت چند مرد به کوش دختر رسید که با اولاق سفر می دختر دختن نگاهی به زیر درخت انداخت و دید قافله که تعداد زیادی اولاق داره و جنسایی بر پشت اونهاست. آخرین نفر رئیس قافله بود که سوار قوی ترین حیوان بود و به مردای دیگه می گفت که حیوانات رو سریتر حرکت بدن تا قبل از غروب آفتاب به استراحتگاه برسند. دختر به سختی سرشو چرخوند تا افراد قافله صداشو بشنوند. بعد این و خوند. برادرم رو میشناسید. اسم حالا با او رو شنیده اید. کاش هرگز نمیدیدمش. هست کسی که رهایم کند از دامش؟ مردا با شنیدن صدا ایستادن و سرشونو بالا گرفتن تا ببینن کیه که یکی اینقدر زیبا آواز میخونه. یکی از اونا گفت اون یه پرنده جادوییه. دیگری گفت نه اون روح شیطانه. دختر دوباره شروع به خوندن کرد. برادرم رو میشناسید اسم حالا با او رو شنیده اید. کاش هرگز نمیدیدمش کسی هست که رهایم کند از دامش. رئیس کاربان گفت این باید یه دختر باشه. و با این حرف از درخت بالا رفت. وقتی به بالای درخت رسید دختر رو دید که با می به درخت بسته شده. تنابا رو باز کرد و از اون پرسید تو یه دختری یا یه روح؟ دختر جواب داد، آقا من دختر ای هستم که برادر حسودم منو به این درخت بسته تا بمیرم. بعدم ماجرا رو برای رئیس کاروان تعریف کرد. رئیس کاروان مرد مهربونی بود و خودش فرزندی نداشت. اون فورا دختر رو از درخت پایین اوورد و روی علاقش نشوند و بعد رو به اون کرد و گفت تو نباید دوباره به خونه پدرت برگردی چون برادر دوباره راهی پیدا میکنه تا تو رو بکشه. با من به خونه ما بیا و از این به بعد دختر من باش. قافل دوباره به راهش ادامه داد تا به خونه مرد رسیدن. همسر تاجر از دیدن دختر بسیار شاد شد و از اون به خوبی مراقبت کرد. سالها گذشت و دختر بزرگ و زیبا و زیباتر شد. زیبایی دختر اونقدر زیاد بود که مردم از جاهای دور و نزدیک برای دیدن اون می گذشت زمان باعث شد که تاجر و زنش فراموش کنن که دختر فرزند واقعی اونها نیست. اونا دیگه اونو مثل دختر خودشون دوست داشتن. آقبت دختر به سن ازدواج رسید و پدر اعلام کرد که فرزندش، تنها با مردی ازدواج میکنه که شایستگی کامل ازدواج با اونو داشته باشه. از اون طرف حالا با او هم که یه مرد قوی و ورزیده و زیبا شده بود رو به پدرش کرد و گفت میخوام به سفر برم تا همسری برای خودم پیدا کنم. آوازه زیبایی دختر حتی به دهکده کوچیک که اونها هم رسیده بود. حالا با او هدیه های زیادی رو همراه خودش برد تا بخت خودش رو به عنوان خاستگار امتحان کنه. پدرش هم به اون لباس های زیبا و حکیسه از خرمهره و سبدی از دانه های درخت کولا داد. احالی دهکدن با زدن تبل و خوندن آواز اونو بدرقه کردند. سفر پسر صد روز طول کشید. اون به هر کسی که می رسید سراغ خونه ی دختر رو می گرفت که آوازه زیباییش همه جا پیچیده بود. آقابت روزی وقتی خورشید میخواست غروب کنه، پسر به خونه ی تاجر ثروتمند رسید. حالا با او با قامت استوار و چهره ای زیبا در آستانه در ایستاد و هاش رو روی زمین گذاشت. پست قهوهی بدنش زیر غروب آفتاب برق میزد. تاجر تمام شب و با حالا با او صحبت کرد. عاقبت قانع شد که این مرد مناسبترین شوهر برای اون دختر زیباست. روز بعد وقتی دختر رو تا به خاستگارش نشون بدن، زبون حالا با او از دیدن اون همه زیبایی که تا به اون روز تو هیچ دختری ندیده بود، بند اومد. دخترم با دیدن چهره حالا با او مهر اونو به دل گرفت، اما همین که مرد شروع به سخن گفتن کرد، دختر صدای برادرش رو شناخت. دختر چیزی نگفت و تو سکوت اونو که هدیه ها رو به پدرش میداد نگاه کرد. آقابت وقت رفتن رسید. پدر و مادر مهربونش با قم و قصه با اون خدافزی کردن و اونو برای سفر به خونه ی شوهر بدرقه کردن. دختر همراه حالا با اون راه بازگشت به خونه ی کودکیش رو پیش گرفت. در طول را هم دختر اصلا حرف نزد. مرد جوان، پیش خودش خیال کرد که این از چرم و هیا دختره که تمام مدت سکوت کرده. وقتی به خونه رسیدن، پدر و مادر واقعی دختر با آغوش باز به اون خوشامد آمد گفتن و آماده ی تهیه کردن وسایل جشن عروسی شدند. اونا نفهمیدن دختری که میخواد عروس اونا بشه همون دختر کوچیکیه که سالها پیش گم کرده بودن. اما مرتب از هم دیگه میپرسیدن، این دختر همیشه ساکته چرا حرف نمیزنه. مرد و زن تاجر قبل از رفتن دختر یه هاون طلایی به او داده بودن تا بعد از ازدواج برای شوهرش تو اون ارزن بکوبه و کیک ارزن بپزه. اما دختر همون شب اول هاون و بیرون آورد و, و مقداری ارزن تو اون ریخت و شروع به کوبیدن کرد. بعد آهسته زیر لب این آواز رو خوند. چطور میتونم با برادرم ازدواج کنم؟ چطور میتونم به پدرم بگم؟ آیا مادرم حرفم رو باور میکنه؟ چطور میتونم حرفم رو ثابت کنم؟ مردمی که در اون اطراف زندگی میکردن با شنیدن صدای شیرین دختر جمع شدن تا به آواز اون گوش بدن. اما با تعجب دیدن دختر چشماش از گریه سرخ شده. دوباره همون آواز رو زمزمه کرد. چطور میتونم با برادرم ازدواج کنم؟ چطور میتونم به پدرم بگم آیا مادرم حرفم رو باور میکنه؟ چطور میتونم حرفم رو ثابت کنم؟ پیرزنی که آواز دختر رو شنیده بود به دنبال پدر و مادر حالا با او رفت و اونا رو به اونجا آورد. زن و مرد باش دیوار حسیری پنهان شدن و به آواز اون گوش دادن. پدر با شنیدن آواز اون گفت یعنی ممکنه که اون دختر گم شده ی ما باشه؟ مادر گفت از همون لحظه اول یه چیزی آشنا در نگاه اون دیدم. پدر گفت ما میتونیم از این موضوع مطمئن شیم. یادت هست که دختر ما از کودکی جای زخمی در پشت کمرش داشت؟ مادر جواب داد بله یادمه. بیا همین حالا پیش اون بریم و درباره ی زخمش از اون سوال کنیم. پدر و مادر به سراغ دختر که مشغول کوبیدن ارزن بود رفتن و گفتن میخوایم پشت تو رو ببینیم چون فکر میکنیم علامت زخمی در پشت تو وجود داره که ثابت میکنه تو دختر واقعی ما هستی. با شنیدن این حرف بغز دختر ترکید و با شادی خودش رو در آقوش پدر و مادرش اندخت و گفت من علامتی رو که در پشتم داشتم فراموش کرده بودم. من همون دختری هستم که شما سالها پیش گمش کردید. مرد به خاطر اینکه دخترش و دوباره پیدا کرده بود یه جشن بزرگی تو دهکده برپا کرد و دستور داد غذاهای لذیذی بر اجاقهای بزرگی پختشن. تبلها با صدای بلند نواخته شدن و همه به جشن و پایکوبی مشغول شدند. حالا با او هم از کاری که سالها پیش کرده بود سخت شرمنده شد. شب وقتی که مردم دهکده خواب بودن تیر و کمونش رو برداشت و